بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله علی سیدنا رسول الله و الطيبين طیبین و طاهرین و معصومین علی عدائهم اجمعین اللهم فقم و جمعی المشتغلین و یا ارحم الراحمین هست تکمی و تحقیق و تنبیه بست متعرض بشیم به عبارات ادهی از اعلام مرحوم حاجی نوری در مستدرک مرحوم حاجی نوری همینطور که ما در عبارات مرحوم سری خوندیم از اواخر بحثیت دسته صفحه ایشون اصلا بخواد بکنن شواهد بیدارن که اصلا قصولا سکونی سنی نبوده شیعه بوده اصلا این بحثی سکونی سنیت قبولند حدیث صفحهی در این چاپی که من دست من هست از صفحه سال شست به بعد. ایشون هی مناقشه نمیکنه، بله و مثلا یک حدیث وزن از سکونی عن عبی عبدالله قال له لفت مز زغدف دنیا قال وی حکی حرام ها فتنکب بخ این از که از حرام ترک حرام بکنند این البته از کردم چون این بحث هایی رو که ما مطرح کردیم فرقه بین رجالی و فهستی فر بین این کتاب از روایات او باشه یا از کتاب او باشه این در عبارت قدما نبود مثلا همین روایاتی که اینجاست احتمالا در کتابش رو از اون به قسمت معروف کتاب نبوده شایدم روایات های بوده روایات منترد ایشان بوده اصلا چون این سند نداره در بیور مؤمنین اکثر اونی که بیشتر با عنوان کتاب مطرح بوده احتمالاً مثلا مرحوم شیخ طوسی هم اثر ده به سرکونی خلاف نجاشی سه کتاب نسبت داده یکی کتاب یکی نواده کتاب کامل مثلا ممکنه از اینا جز نواظر شده یک کتاب معروفی داشته که اون داره سند واضحی بوده بله مثلا داره که عدت من اصحاب نواظ از احمد بن عبی عبدالله برقی ان الجحم ابن الحکم محوم برقی تارتن توسط نوفری نرم کنه که انشالله از خواهی کرد احتمالا وقتی بوده که نوفری به تهران آمده چون نوفری در کوفه بوده اساساً. و راوی مهم کتاب سرکنیسه اوافر اون منتقل به ریل ما الان روایت داریم برقی از نوفلی از سکونی احتمالا روایت برقی اینم که مخواستم بعد توضیح بدم آده یواشواش. احتمالات احتمالاً روایت مرگون برقی از سکونی از نوفلی در ری بوده و احتمالا روایت ایراد هاشم از نوفلی در کوفه بوده این احتمالش خویه خیلی خویه در بعضی از موارد در کتابهایی در کتابه که داریم حتی محاصل مرحوم برقی از شخص نام جهب نه حکم از نفری از سکمه نرو میکنه. احتمالا این غیر از کتاب معروف سکنی باشه. و اضاف قالقال او و بدله ليس از دنیا به ضاعت المان واضحه که این اون کتاب معروفی که محل کلاممه نیست تعویرش اون کتاب نمیخورد. و خبران شاهد داصدرمن، علا هم او معهولم یکن که عمل راوی بله خب یه این بزرگان ما مثل مرموها جنوری تصور نکنید این دو تا حدیث حدیث شفایی تصور احتمال داره باشه مثل جزء احادیث کتابش نکنید همونطور که محوم شیخ فرموندن جزء کتاب نوادر ایشان باشه چون من چند بار از کردم هم نام کتابها و هم توصیف کتابها اصولا در مسادر ما در کتاب نجاشی خیلی دقیقتر از کتاب شیخ انصافاً فهرست نجاشی به مراتب دقیقتر از فهرست شیخه این هست اینه اما تو بعدی از جه فهرست شیخ بهتره نمیدونیم اولا چرا شیخ اینقدر دقت مراحت نکرده بعد مثلا اینجا نجاشی یک کتاب بشنست باید شیخ سه کتاب الان این چطور شده که مثلا شیخ بیشتر نسبت داده من یک حالا چون مطلب هم اینجا متعرض شدم اینو باید در شرح عبارات دیروز یه احتمالی بیشت به ذهنم آمد چون خوندیم دیروز که مقروم نجاشی میگه من نسخه سکونی دارم خط ابن اشناس که شیخ بر اون اجازه داده احتمال میدم احتمال میدم ولی علماندالا میگه بیشت به این فکر میکردیم شاید این کتاب کبیر رو که شیخ گفته همین نسخه باشه احتمال میدن یعنی مردم شیخ که خود اصل کتاب سکونی دیده و راستن پس یعنی کتاب سکونی کتاب بزرگی بوده از یه طرف شیخ مثلا عطار ما کلینی صدوق دیگران شیخ مفید استاد ایشان احادیث سکونی رو نقل کردن پس مثلا 600 تا حدیث 800 تا مثلا اون کتاب دو ملوان حدیث لذا مرموم شیخ احتمال داده که سکونی دو کتاب داشته، یکی کتابی که اینها نقل کردن یکی کتاب کبیر کبیری ایشان. و این در... اگر این اگر مراد شیخ این باشه درست نیست چرا؟ چون توضیح دادیم کتاب سکونی اصولا کتاب بزرگی بوده اشتباه نشه اصحاب مقدار زیادیش ها هر کردن اون دقیق پس ها مقدار زیادیش رو هرزید کردن به تمام کتاب عمل نکردن که حالا این شاید رو بعد توضیحش خواهد دارن به چون روایت برخلافش داشته یا فتوا برخلافش داشته خود یک تصریح میکنه که به روایت سکونی عمل کردن جایی که روایت برخلافش در شیعه نباشه یا فتوا برخلافش باشه کتاب سکونی اینطور نبوده که متفقان علیه بودیه یقیقی میفرمونی شاید منشه تصورشه که کتاب کبیر چون نجاشی کتاب شناس بزرگیه وعیده به سکونی حالا به هر حال ایشون به اصطلاح این رو داره و مرهوم صدوق بعد مرهوم ها نوری چند تا بله شواهد دیگری هم که دوتا روایت دیگر هم اضافه میکنه بله در این که ایشون روایاتی داره که مخالف با عامه تن روایت المتعدی فی الوضو کناقکان یا کناقذه چون سنی سه سعه داشته شیعه دو تا یکی داشته ایشون میگه از این روایات در میاد که مثلا ایشون شیعه هست. بعد مرحوم حاجی نوری اینا جوابشو مرحوم آقا تسطری خوند می‌گه میخوام تکرار بکنم مرحوم حاجی نوری باز در با مسئله شواهدی ذکر می‌کنه بر شیعه بودن ایشون و من ها هم نشهر را کرده به اشاره نشهر از کردی که شیخ در تهرس مذاربش نگفته در رجال نگفته نجاشی هم نگفته ابن شراشو نگفته اینها اسم این رو به عنوان اینکیشون غیر امامیست نیورده بله این یک مثله مرموم بردی هم از کردید عباره عباره بردی مشکل چون آفزه یرگی یعنی اندر عوام حالا این طلب عوام عوام, عوام ابن حوکر چیه؟ اوزیادش طابقا؟ نه یکی از شواهدشان هم ایشون این گرفت عدم و اندل مخالفی فقال ابن حجرت تقریب اسمایل ابن عوی و اسمایل نزیاد زیاد قاضل موسل مطرو کن کذبو از سرم دل اتفاق رو کذاب میگونن من از سامنه لفظ طبقات این شابه وقتی گردان اینجا مخامات بشن مناسب نیست طبقات در میانه اهل سنت یک نواخت یک نواخت نیست الان به هر حال اگر مثلا ایشون متوفای 180 باشه و هر طبقه رو 30 سال حساب کنیم میشه به اصطبال 6 نه 8 این یک نکته داره که 8 این وقتی متعرض میشه بعد ابن که از مزرگان اهل سنته انهو کرال حدیث مراد از منکرال حدیث یعنی ایشون روایاتی و از اصول نهار مورد کسی دیگه نهار اینا بیشتر ناظره به مزمون بعد ایشون میگه که ولا وجه لفو الا امامیت رو، این تقدیبی کردن چون ایشون است. بله پس محلو میشه این همه که از عدله ایشان بعد ممن ها شیخ سکونی و بن دراج و قیاسب کلوب را همه را جزا آمه حساب کرده با این که ایوم نوه جز بن دراج جزا آمه نیست قیاسب کلوب هم ایشون میگه احتمال داره و این روشن نیست که احتمال هم قیاس نکلوبه شیه باشه بعد از اون طرف متعرض عبارت نکت نهایی محقق میشه شه نهایی ایشون چاک شده با هم جامعه فقیه نو... و انصافر هم کتاب لطیفیه نکت نهایی راجع به نکتی راجع به کتاب نهایی شیخ توسی. من منعنل اکثرین یفرحون منفرد به سکونی اکثرین اون منفردات سکونی رو نفی میکنن کنن فاقوه مضافن الى معارضت دیل ما نقل ناهان اولا ما از محق نرکی نیشون قصه سخه است و اگرچه آمنیست اما سخه است وقت ما ما الى احتمال هم دیه الان من تأخرن شیف یعنی بعد از شیف کسانی که بعد این گسرهون من فرزه انهولای و ناطل و ساقه لعنه هم یکرون ها در کلام غالبا فی مقام انخراد رابی به نقل فی مقابل الذي رواه و المشهور و بین رواهد چون مرادشون ای که ایشون شازه مثلا حدیثش قیصی رو شازه و این اختصاص به سکونی نداره در غیر سکونی هم هست بله این خیلی حرف محروم ها جنوری عزیبه در اینجا هست اولا اینکه که ایشون میفرموین که ما آرز از ما ایشون فوقش قبول میکنه بساقتش رو اما بساقتی که یعنی به عنوان کافی نیست در وجیه هم. باید عمل اصحاب هم باش باشه و این که این مطلب مال از شیخه خیلی عجیب از منم آجینه این مطلب صدون گفته هستن قبل شیخه لا افتی به مایان فیضا به حسکونی چون انشالله خواهیم گفت که اصولا محقق همین این مطلب نقل کرده که لا یه به مایان فیضا به حسکونی به این توضیح خواهیم دو که این عبارد از کجا آمده است این یعنی چی؟ از این عبارد لایو اومد به ما یعنی فرد به سکونی یعنی چی از کجا آمده؟ منشه عبارت چیه؟ انشالله بعد من توضیح میدنم بله بعد ایشون میگه و عجیب است که حسی جمع بکنه بین قلوب نوفلی و تصنون سکونی که نوفلی در اواخر عمرش غلافی آقیله نه غلافی آخر عمره و ب خب نوفری در اوائل اونوش کتال سکونی نارد که در اواخر اونوش غالی شده و ما توضیحات هم که رانه انز کردیم احتمال دردی داره که مراد از غلوب در این جورجه ها سیاسی باشه با آمدن ایشان به و در تهران احتمالا مراد از غلوب سیاسی هم یعنی مثلا قائل به حرکت مسلحانه ضد نظام و ضد اهل سنت رو اینجوری مراد از حوزه سیاسی اینه غیر ان که خلافی آخر و عمره چون بودن عدیه که در این جعد بودن و من دیواظه فقه این رسانشی میشم اولا این مراد پیغه هست و قلب و معلوم نیست که قلب و عقائدی باشه احتمالاً در کلمات نجاشی مرادش قلوب سیاسی باشه و هیچ منافاتی نداره که از یک سنی کتاب نقل بکنه و اصولا ما توضیح دادیم نقل نوفلی کتاب تکونی رو ارزش علمی نداره مثلا این دارای ارزش علمی نیست چرا چون که نوفلی خود شخصیت علمی بزرگی نداره که از نقل او بخوایم ارزش علمی پیدا بکنیم این به کتاب ما هم که یواشاش به اگر از کتاب استاد و مرحوم توستری و بعد تقیات حاجی نوری که ایشون استاد در قبول سکونی و توصیق سکونی بلکه در آخر کلام احتمال تشیع سکونی شواهدی رو در تشیع سکونی برای اینکه که های این نحوه بحث اصولا بین ما روشن بشه خب مناسب بود ما از تعلیقات مرمومه ها وحید بهبانی شروع بکنیم حالا چون بعد از مرمومه بهبانی و بهبانی هم بعد از اخباری ها انصافاً یه مقدار زیادی بحث رجالی و حدیثیه ما باید که طورش عوض شده اصلا افتاده تو تحقیق و تطبع و مراجعات و ببینید ما کتابی رو که افتداعا در رجال داریم مثل رجال برحی این تقریبا خیلی کم توصیق داره من سابقا ایشارا تو کلار بحثه اول و یا شاشه توضیح میدیم رجال بزر علوم اعتباری در علوم اعتباری موضوع واحدی نداره تقسیم علوم اعتباری به خاطر موضوعات نیست. علوم اعتباری تقسیم میشن به اساس اهداف و اغرازی که هست. یعنی علوم اعتباری به دنبال قرضی هستیم که اون علمو تدوین کردیم. نه علوم حقیقی چون دنبال یک واقعیتی هستن و حالات اون رو مطرح میکنن ما موضوع می‌خوام. مثل ت، مثل نجوم، مثل فیزیک، مثل شیمی. اما علوم اعتباری، اینها دنبال موضوع واحدی نیستن. ممکن ممكن موضوعش متعدد باشه اصلا موضوعی نداشته باشن مثلا مثلا علم نه که اولون رفتن دنبال کلمه و کلام و اشعار کردن که کلام کلام دو تا موضوع بود واحد باشه از حرف الواحد لا يسولون هي حرف صغه كده اون روش عربی ال مثلا نه اینا هیچ خودم واقعیت ندارن اصلا اون بحثایی که موضوع کله علم مایوم حسفیان عوارض اضافیه تو مثل نحو و اصول و رجال و اینها نمیاد واقعیت این مطالبی که گفته شده خیلی دنبال واقعیتی توش نباشه در مثل نهر امدهش سون لسان این خطه اف المغاره دنبال اون قرد هستن نه دنبال این که کلمه باشه مفرد باشه کلام باشه نه امده اون جهته البته خب معروف بین علماء لابدل کل علم موضوع و موضوع امایو حسوفیان اولد ذاتیه کسی در صلح در کتبایی میگم وجود نمیخواد دنبال غرض وارد بریم تمایز علوم رو به راست صحیحش اینه علوم حقیقی تمایزشون به موضوعاته علوم اعتباری تمایزشون به اغراض و افدافه. نه کلام مشهور افراغش درسته نه صاحب کتابهای اطلاقش درسته اینو ما در بحث ابوالبحث مطرح شدیم و مرحوم آزیاب انگیزش همه هم درست هستند هم هم هم خب البته ما بود هم از این که در نوشتن می‌گاردن که این مطلب من با وازیو گفتم فرقه بین علوم حقیقی و اعتباری، توی مونتاژش آمده و نوشتند که من از کلام استاد استفسانو و عذرج او در مقالات، مرحوم وازیو امینشان هم همینا هم درسته علوم حقیقی با علوم اعتباری فرق میکنه تو علوم اعتباری ما دنبال اعرازی، رجال جزء علوم اعتباری است. دقیقاً. وقتی تدوین رجال شروع شد، به دنبال ترز رفتند. نه به دنبال یک انوار اون هدف رو حساب کرده. اون هدف چی بود؟ میخواستن از سال 150 که تقریبا رجال پیش اهل سالت شروع شد دنبال این بودن که خودشون از سال 150 به زمان رسول الله برسونن هدف این بود خب تو این هدف اولین مطلب مثلا بین ما و سه واسه دو واسه هم چار مثلا بخاری با این سال 256 و کمترین واسطه بین او برسول ها ستاست معروف سلاسیات بخاریه خود مورد فا اماله ان نافعنه نابر ان رسول الله اینا به هر حال اولین چیزی که شما اصلا اولو اول و منفتشه به رجال بل ببینید شعبه بینید یعنی اولین بحثه رجالی به ساخت شد اول و منفتشه ان رجال بل اران شعبه پس آماندن اول چی گفتن تو بگی از اون آقا اون سغرس یا اون آقا از اون آقا اون سغرس داریم؟ تو بحث رجالی اولین بحث به ساقت شد در بحث خب بحث دوم پیدا شد تو که میگی نافع این کدوم نافعه ما پنج تا نافع داریم بحث تمیز آمدن. هی یواشواش مباحث رجالی شکل گره آیا این که تو میگی اون آقا رو در کرده؟ یا نه بینشون 50 سال فاصله داشت بحث طبقاتی شامه است یواشواش شخصای رجالی شکل گرفت یعنی دیگر کاری طبیعت بحث علوم اعتباری اینطوره بر اثر گذشت زمان دنبال اون غرض و هدف و علت غالی دنبال اون علت غالی نیامدند علم تدوین می‌شد این در واشاش خدمت مثلا ما در سال 150 این هدف رو نداشتیم لذا خیلی دقت بزنین کار واصولن با کار اهل سنت اختلافای اساسی داره اونا میادن میگن فقط که مالک میخواست خودش رو زمان رسول الله درسونه دو واسطه سه واسطه چهار واسطه بین اون و رسول الله صغرض یا نه رفت داره برس. ما در سال 550 این حرف نمی زدیم گفتن امام صادق وقتی از کلام رسول الله دقت بکن چه جوشون چون رجالی چیز ثابتی که نبود بزن گفتن مثل تپ که نبود رجالی که دو علوم اعتباری، تو علوم اعتباری میاد بود به رسالت، نفتش اندرشا، تو این که کسی رو پتش اندر نمیذینه. لازم نحاک لازم فرمایید که ما نحله شکل گیری ممارس رجالی ما با ممارس رجالی اهل سنت فرق پیدا کرد. پیداળો بهاتون متعددی رو که تو بحث بودین خبر بودین، شواهدشان عرض کردیم. دقت بکنید، اینا هیچ تضریجی هی ما وقتی که مثلا طبقات رو اصحاب ما وقتی نوشتن تقریبا ترین نوشته های ما رو طبقات اصحاب ما رفت رو احمد علیه و مثل برقی بعدها هم ابن اغده خب اهل سنت اینجور طبقات مثل ما رو ندارن طبقاتی روی مذهب دارن مثلا طبقات شافعیه شافعی، شاگرده شافعی شاگرده شاگرده، اینجوری دارن اما اون افطلاهم میدونید تراجمه، رجال نیست در رجال طبقات رو که الان میگه بایتو خوندیم میشه وقتی توضیح میدیم طبقات رو شکل دیگری گرفتن دقیق میکنیم اما ما در اصحاب ما مثلا اولین کسانی که در رجال نمیشتن مثل مربون بردی طبقات رو برد روی اصحاب اعنیم این طبقات رو اصحاب اعنیم از حسائط ما اشتباه نشه من دیده می... نفر از هم نامه به یکی نوشته رو که مثلا فلان کتاب باسر چه غیر خاص میشه غیر خاص چه سر اصول باسر خاص در باب ساده این نفر دومی یعنی چی این که چه معنایی داره چه الفاظ خوب راست هم خوب نمیفهمه اصطلاحاتو با نمیفهمه تا زن بشویم یعنی من اصحاب باقر میگه خب چه نکسی داره راست میگه مثلا امام مجتبی درانه امامتشون ده ساله امام حسینم از سال 50 تا سال 60 سالش شده امام عسکری 6 سال و 5 خو... سال و خرده ایه مثلا باب نسال ما, عسکر... ما عسکری امام یعنی ائمه ما علیه السلام خب این 5 سال و خود این اصحاب امام عسکری اصحاب امام حادی اونا اصلا در علم میگن این علمی نیست که شما 5 سال و 6 سال و طبقه قرار مدیم سال و به طبقه قرار یقت میکنیم چی شد اون یه دیدگاه ما یه دیدگاه دیگری برای ما مطرح بود من الان باز این بحثم نظام اصولا یک مقداری ما روی مباحث فهرستی هم کار کردیم که سنت کار نکرد اون مجموعه اول ما مجموعه های اول ما یا به ما نرسیده مثل رجال عبدالله جبله یا رسیده خیلی ناقص رسیده کم رسیده یا خودش فی نفسه خیلی کارایی ندارد اون رجال برقی این کارایی رجال برقی اصحاب همه است. پیلی کم نادر اگر توصیق بشته باشه شبیه این کار هم مرحوم شیخ کرده شیخ توصیقش بیشتره شاید مثلا ده درصد در کدرشارشون توصیق داره ولی درنسی که نور درصد هشت و درصدش توصیق نداره اما طبقات رو داره معنان طبقات این کاری که مرحومی شیخ کرده کاری که مرحومی کشی کرده ما یه چند نفر از بزرگان این طرف بزرگان من معلفی مثل روی دکتر احمد قاریابی که کتابیشون به ما نرسیده، صبول قاسم بر برخی کتابیشون به ما نرسیده. یه مقدار از مباحث اینها در های کشی آمده. از های اونها در کتاب کشی آمده. که اونم در خطوط حساب کتاب داره که خیلی واضحی نداره، خود اونها خیلی باعث یا تغییر شده یا علاوه ها اصلی و مشهورش مشهوره. مجموعه های رجالی ما که اگر واقعاً مقایسه بکنیم با بحث های رجالیه اهل سنت انصافا مشکلاتی داره از نظر خود فند رجال اصلا اونا مال یواشواش روا ان فلان و فلان و فلان و فلان, فلان, فلان. روا رو نداشتیم ما خیلی نادر موارد کمی در بخ... نواجی داریم که روا ان فلان و فلان بیشتر این قسمتی که ما داریم رواه علی عبدالله رواه علی کمی داریم روا ان فلان تو رجالیه شیخ موارد کمی داره اما این در زمان شیخ متعارف رجال احسادات بود. به نظر می‌رسه مجموعه میراث‌های ما تا قرن پنجم که مرکز بغداد سرپا بود، مجموعه اینهاست. رجال برقی، رجال فارس ابن قضاهری که محل کلام شدید بود، رجال شیخ توسی رجال کشی، کشی خودش می‌گذد غیر از این حالات هست که حالا خودش داشته. چند تا کتاب رو همشون در اختیارش باشه. از این جهت کتاب کشی ارزش خاصی داره. معرفت و ناقلین عیاشی پیشیشون بوده معرفت و ناقلین عبرقاسن برسی پیشیشون بوده احتمالا قسمتی از موادس به جالی ابن فضال بوده کتاب مخاخه و اهل بسره و کوفه مال به اصطلاح مال جبریل ابن احمد فاریابی پیشیشون بوده و بعضی از این مسادهی که در اختیار کشی بوده حتی اسمش در کتابه مند همین کتاب جبریل ابن احمد حتی مخون نجاشی اسمشون نهباید ما یه مقدار هم کتاب رجالی بعد از این طبقات داریم یعنی قرون ششم و هفتم این ها که در حلب بودن یعنی ابن عبیتی داریم در حلب کتاب رجال باشد علی ابن حکمی داریم غیر از علی ابن حکمی در رواست ماست ایشون ظاهرا ظاهرن احتران حلبی ما اصلا اسم اینها رو نداریم اصلا, دو دو اصلا با این دو نفر باید کتاب رجالی دارن ما کلن اسم اینها رو نداریم ابن حجب تو لسان و کنه. یعنی این سنی از اون حرف میکنه علی ابن حکم میگه کلا نمیشناسین میگه آقا علی ابن حکم که بعداً دوستان کتاب علی ابن حکم مرده قطعاً اون نیست 50 56 اون باشه ایشون 6 باشه اصلا کلا ایشون نمیشناسین یه یعنی مقدار مسأله من از مصادر چوری میخوام بکنم و این خب این مصادرم که اعتماد برایش مشکل هستن اونچه که ما الان از یعقوب نبی پیدان بعضی از برداشتن همه چیو رسانمیزه ما حبیب ابن ابی ها جمع کرده ما الان خودمون مستقلا کتاب شیعه هست اهل حلب ما اسمش هم کتاب ما نداریم حالا تصور بفرمایید اینکه کتابش نداریم اصلا اسمش هم نداریم این علی ابن حکم که رسانمیزه نارم میگه از اصلا درست نمی‌شه اصلا درست نمی‌شه کی این شخص شیعه است و کتابم داره ما تقریبا میشه گفت که به طور رسمی یه چیزی که مثلا سراته درستی داشته باشه در رجال و یک مقداری جوانه به دیگه داشته باشه تقریبا میشه گفت اولین بار علامه و معاصر ایشون ابن داود ابن داود کتابش خیلی غلط قدود داره دیگه تقریبا عدیمول انتخابه دو ست تا نکته کاری نکات خوبی داره و مخصوصا رجال شیخ به خط شیخ بیش ایشان بوده شاید ذات اسماش بهتر از ذقیه باشه به الا خیلی غلط ورود داره حالا میگن نسخه خود ایشان غلط بوده خط ایشان خراب بوده از غلطهای بسیار شایع در این کتاب نسبت دادن کلمات کشی به نجاشیه نجاشی به کشیه این به اصطلاح معروف خیلی جار شده جش مراد کشیه نمیشه کش مراد کشیه تو کتاب ابن داوود که از مشکلات این تو هر صفحه یک تکرار شده این مثلا یک بار تو هر صفحه چند بار جش و کش جوجه جا جوجه داره میشه جش و کش میه میشه هر کی تکنولوژی میه در از کتاب ابن داوود رحمه الله داره هنوزم فوائدی داره مثلا چون خط خود نصوی شیخ بوده بعد یاد دیگه هم داره درثره داره فوائدی در آخر داره من تو نمی‌خوام وارد کلی بحث کتاب الانام نکته فرمش این بود که اولا ذات اسماء یه مقدار داره به سر ایشان نذری یاد نوشته یه مقدار دقت بیشتر اعمال شده بعد ایشون بحث توصیف و عدم توصیف رو جدا کرده قسم اول و دوم نوشته ان شاءالله یک فرصتی پیش بیاد که فرق بین قسم اول و دوم در علامه و در ابن داوود یکی یا دو تاست یه فرصت دیگه شما نمیخوام الان همه بحث رو اینجا انجام بدید کتاب علامه نسبتا اگر بخوام بگیم یک کتاب به اصطلاح امروز ما کلاسیک تو رجاله همین کتاب علامه یک کتاب داریمش جمع و جوره مرتبه بازم مثلا راوی و مرویعن غالبا نداره توسیقات جدا کرده و افعال جدا کرده میشه گفت یک کتاب مثلا ایشون معظم مطالبش رو از نجاشی گرفته با اینه نجاشی فهرسته ایشون بخشيی سلسله نجاشی را حفظ کرده که مثلا کتاب داره 5 کتاب داره اخوان و بیفلا اینا رو حفظ کرده بخش رجالیه نجاشی رو گرد اینشون از دوست کتاب دوست کتاب دیگه هم میکنه مثلا اینشون تقریبا برای اولین بار از ابن غزواری نعروم میکنه از, از این کتاب مالی ایشان نبوده اخیل استادش ابن طاووس اینشون مطالب رو از ابن طاووس کرده مران از ابن طاووس در اینجا احمده نه مراد ابن طاووس معروف آبه اربال علی ابن طاووس احمد اخوه خب باقی هم برزر ایجالیست آثار این مرد بزرگوار ابن توب از این دو شاگردش واصل شد یکی علامه تقریبا اولین کتابی که در شیعه راه افتاد با عنوان علی گفت که یه کتاب کلاسیکی که در رجاء و وجود کتاب الله است که خب کتاب الله است که مثلا 3750 تقریبا شیخ در اصحاب ما صادق اسمشون بوده که مجبورن خیلی اسم اونواریم اونانگری دیگه علامه اونارو نمیبرده علامه یه چند تا این یعنی اینا هم شکله مشاهیر کسایی که مثلا توی حدیث‌نخشی دارن اونا رو می‌شناسیم اما این چه بگیم مثلا کتاب علامه کافی باشه برای تمام اسناد کافی نه کافی نیست اینقدر ما تو کافی اسامی تو ارباد داریم که در علامه اصلا اسمش رو در صدوق داریم در تهذیب داریم در طبای دیگر داریم از این جهت کتاب علامه کارایی نداره اما این کتابی جمع و خلاصه الاغوال فی علم اصول ایشون در خلال کتابش می‌داره که یک کتاب کبری نوشته این هم که این کتاب کبیریشون نیت داشتن بدینستن منوشتن نوشتن هر حال ما چی از این کتاب کبیری نداریم هیچی از کتاب کبیر علامه در رجال دست ما علام احتمال داده شده نظر مبارکشون در دیگه بیستن محفظ نشدن دعید نوشته باشند و هیچی عبارتی از این کتاب موجود نباشه. بعد از علامه انصافا کسانی که آمدن مثل شهید اول, اول و قیسانی جامعه مقاصد زیادی یادن در علامه جامعه خود مدارک و معالم و خود رجال شیخ هورد همین هم جلو من خاتمه شیخ هورد ایشون مثلا مبانی مثلا موارد علامه رو نرمو کنست سه قصم قاله علامه سه قصم قاله حالا علامه علامه حالا نجاشی رو این دو, دو سکی گرفته هم علامه هم نجاشی انصافا تا مدت ها تا دو سه این کتاب علامه یکی از های رجالی بود بگرد میکنه اما کمبود زیاد داره نه اینکه کم داره خیلی کمبود داره این کتاب من تا اونجایی که فکر میکنم شاید نخست این کارهایی که شروع شد که با توسعه بدن هواشی شهیدستانی بر همین خلاصه است. این هواشی به خوبی مطالب اضافه داره خب یوا شواش انصافا از ضمن شهیدثانی این درس که روی های حدیثی و رجالی ما بحثی تازه بکنیم، مناقشاتی بکنیم، شواهایی ایجاد بکنیم، چیزی ایف بکنیم، و بعد مسئله طبقات و با بیشتری مرحوم منتقا داره، صاحب محمد ما، روی مثلا ما حدیثی میدونیم که فرض اون فلان آقا گفته صحیحه، فرض اون جارمقاسه، مرحوم منتقا در همین صاحب مال رو گفته نیست. چون به لحاظ سند اسماق ثقاتن اما این سخت داره این طبقهش رو نمیکنه ببین نه هی یواش یواش در میان اصحاب ما هم دیر شروع شد در حال آمد بیاد قرن دهم ده و یازدهم ده مخصوصا چون اخباری ها حملات تونی رو به ادامه انجام دادن و این راه رو قبول نکردند این راه جالی رو کسانی که از مثلا اصولیین بعد از اخباری ها آمدن سعی کردند باز همون مبانی علامه رو اجمالا حفظ بکنن راه های جدید برای توصیح پیدا بکنن این تحول اساسی رجال اینجا بود یعنی این مطلب درست بود ما در شیعه نمیتوانستیم با کتاب های موتود قبلی و با کتاب علامه احادیث شیعه را ارزیابی و تقهیم بکنیم تقهیم کافی نبود این کتاب ها شاید مثلا برای خیلی خیلی غاقب بودیم 15 تا 20 درصد حدیث شیعه کافی بود موظم حدیث شیعه لذا یواش شواش هم خود اخباری ها راه رفتن هم اصولی ها تا آمدن به اخباری ها هم بکردن رفتن راه های جدیدی برای توسیق مثلا لحوه اصلا این خود توسیقه شیخ صدو بود یواش شیخ شروع شد کثیر را روایت مثلا چون کسی روایت سقست کان وکیلن سقست خان شیخ اجازه که توی بحث اول امروز شد شین خیلی یواش و کار درست هم بود انصافا این کار کار درست. واقعا هنوز هم اعلامه داره مثلا اگه یکی بودن در کامنیزار در کامنیزار باشی اینقدر اكيد از دغدغه می‌فهمید اصلا این مطلب رو خوب دقت بکنید اصل این مطلب این بود که مجموعه میراث رجالی ما کافی نبود برای مجموعه حدیثی ما و درست این اشکغال وارد ولی و لضا اخباره میخوااستن از این نقطه استفاده رو میشه از این راهها نداری. شما بقع از این راهها 20 سر اون در درحلید این هم شما حیث داشتین از ذه بریم. و درست این اال درست این اشکال اخباره انال فردا تو بحث ساخت ما اووارد ممسال یکی از غال اش مهم می اشال کامان مجموعه میرا های رجالی ما، خونی مگر شخص نو نراشته اونی که از آن بیمار که مثلا کلاسیکه شو جمع و جورش خلاصه علامه ما خلاصه علامه و شیخ و نجاشی و ابن برقی و هر رو با کشی و هر رو با اندریسی پس فوق ب ۲۰ درصد جواب نمیده برای حدیث جواب نمیده لذا احمدونی گفت این راه رو بری دنبال این راه نریم اصل اونها این بود ما دنبال این راه و رجال و صحیح و ضعیف و موثق و حسن در راه رو بگردید بیاییم در باید عمل بکنیم دقیقی در مقابل از مثل لحید بردوانی هی اضافه شد مثلا عشق قصده او لحو طریقون اره لحو اصل اون سر از کتابون لحو کتاب اون سیالعدی سر از اون اصحاب اجموع از اون ارکان این باب باز شد که ما تو بحث اول رسال هم دو سی روی داریم بحث رو توضیح شد ارد میکنیم و انصافا راه حتی انص اجمالا راه خوبی هی hey, تا حالا این بی بی سی اخیر و انصافاً ادهی از بزرگان ما بعد از مثل وحی تحریقات خوبی کردن هم این ها رفتن هم شباه دیگه و مثلا در میان این علماء مقبوم میر مخصوصاً باید که به انصاف قضیه من از نگاه میکنن مقتل اصفحان در این جب خیلی زحمت کشیدن چند از این بزرگان ما که در این خیلی زحمت در رجا با نبود وسایل در اون زمان کار این استاد زبان خودشون خیلی پرکار و پرتفوق انجام دادن مرحوم امداد در رباشه تمارض و اون مولوی اسماعیل خاجوی و سری سید شرفی قدس الله سره بعد ها از خاندان کلباسی ها مرحوم ابوالمالی از خریجان مرحوم ابو الخدا صاحب سماال مقام اینها انصافا زحمات خیلی خوبی در جهت کشیدن من برای اینکه این زحمات و همه تقدیری برش بشه کتاب بحث شبونی رو از یک مجموعه زحماتی که اخیر از این کتاب تازه چاپ شده به نام نرااتل شخص خیلی مشهور نیست. چه رحمت خوینی قزوینی، خیلی مشهور از به شاگرده های پسر محمود حجی خرواتی به نام رضا محمد قیرتقول مؤید. بوده و به واسطه شاگرد سید شخصیه. این کتابی رو که نوشته این در مقدمه کتابی خلاصه ای از افکار مرحوم حاجوری و مرحوم داماد و مرحوم شخصی مجموعه افکار اینا رو جمع کرده لذا کتاب منهی الصمجوع خودش اثر متأخر چندان شباست نیست لكن از این جهت که حاصل تفکراتی است که قبل از حاجی نوری حالا اینشون در نظر بگیید قبل از حاجی نوری زحماتی است که در این جهت در حوضه اصحان کشیده شده که از زمان مرموم دامان که شروع میشه ایشون اضافه برده که فیلسوف بزرگواریست خب این ترقات رجالیش هم خیلی عالی حواشی و رجال کشتی داره که چاپ شده بعد نیست این ترقات تمامیش از این جهت بهتره ایشون در مرآت و مراد، فی تحلیل مشبهات رجال الاسنام قسمی من خیلی نظرم به خود معلف نیشون پیگه عاشقی بایشون پیدا نکردیم لکن چون نرمی میکنه، مخصوصاً کلمات خود مرموم شخصیم که رسال رجریش چاب شده من به خاطر جمعجوری و مقام جمعجمعیه از سه تا نقطه اصلی یعنی یکی مرمومی دامان یکی مرمومات حاجوری که رسال رجریشون چاب شده یکی هم مرحوم شفتی که ایشون هم کار رجالی خوبی کرده مرحوم شفتی خیلی پر کار و پرتتن با انصاف هم سلاکی ایشون چاک شده به عنوان بخصدش شدن خیلی پر که خیلی درمان کشیده و رسائل رجالیش هم این مقدار چاک شده شده من چون ایشون مجموعه از این مسائل رو داره از این کتاب که از صفحه 436 این نسخه دارم ای که اول از سید داماد حالا سید و داماد رهاش کار نهری کاروتا شکایت عرض بکنن که این چطور شروع شد البته این مقاله منتقری نشد به حاجی نوری رضا ما ایشون نوشه لغت مل علی و الاسماء و بلغل ارباح و الاسوار به عبارات عجیب الخیری شخیه و چون گفته شد بله ایشون نوشه که سکونی شعری ضعیف و حدیث من جدی مضوح و بریو این شروع کرده بعد ایشون من همه عبارتی نمی کنم و داره که غلطون من مشهورات الاخالی من رو و صحیح ان رجل سقتون و روایت من جدی موسیقتون و شیخ و طائفه فی کتاب القدف اصول قد عد جماعتن قدر اقلل اجماع این کلمه اجماع تو عبارت شیخ توسیده در عملت طائفه آمده تبیر به اجماعش کرده و علا ثقته هم و قبول روایت هم و تصویقه و توصیقه هم من سکونی این شاده از کرد که این نسبت درست میست از میخوام توضیح و ازو بکنم. این و امکانه آمنیه و و امکانه فتحیه این تأثیر من در قیمه هایی که میخوام تأثیر میردامه داره با این عبارت رو به سلاما و تأثیر ایشان در حقیقت رفته رو عبارت علامه محقق علی امامیه مجمعتون به عمل به ما و سکونی و اما ما و من ما سله همام که از کمی عبارت تو عده نیست چلا فرد برای عبارت بیخیدیم <تصفيق>